خب های گلم امروز می‌خوام با کلمات مشهور قرآن کلماتی پرکار پرکاربرد از قرآن آشنا بشیم بسمه یعنی چی یعنی به الله یعنی خداوند رحمان بخشنده رحیم مهربان بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان هو الله هو یعنی او الله یعنی خدا اوست خدا او خدا هست اللهو خداوند ربی یه یعنی من ربی یعنی پروردگار من اللهو ربی خدا پروردگار من است